دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست، نادانی. نه محقق ووت نه دانشمند، چار پایی او کتابی چند، آن توی مغز را چه علم و خبر که او هیزم است یا دفتر؟